مباسط طب المعصومین صفحه 164 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فالحبه السوداء شفاء من كل داء الا در مصرف بجا و صحیح با مقدار مصرف خاص و مورد نیاز هر شخص از سیاه شفا و درمانه برای هر بیماری هست مگر سام مگر اجل حتمین تو بعضی روایات از امام صادق علیه السلام که سیاهدانه تا هزار بیماری رو درمان میکنه پزشکی جدید از غرب و شق تا کنون کشف کردن و پزشکی گیاهی طب مکمل قدیم طب سنتی آلترناتی اونها هم مقداری کشف کردن رو هم رفته تا کنون 400 ست بیماری رو باش درمان میکنن چقدر باید تحقیقات و پجوهشون ادامه بدن تا فرمایش امام صادق علیه السلام درد کنه که هزار بیماری را درمان میکنه حالا مثلا برای درمان درد کمر تا زانو یعنی ارقون نسا یعنی سیاتیک چهار دارو بیان شده در روایات شیعه و طب مکمل یک که تو روایات شیعه در بهار علامه مجلسی و در کتاب طب الائمه ابن ابسام نیسابوریان حجامت خاص از کف پا که اون طریقش میگه که نوک ناخونای شخص به جایی که بگیری بسابونی و خوری رگ سیاتیکی که درگیر شده محکم قرار بدی بعد این رو با دو تیکه کش محکم پا رو از بالا ببندی تا مچ از بالا به طرف پایین دست بکشین که تجمع خون بیشتر کف پا حاصل بشه بعد مؤمن ها حجامت خاص از کف پا با سوزنهای بهداشتی تب سوزنی مماننده اون تو گودی کپ پا چند تا بزنی چند قطره خون سیاه میاد بعد جای حفره هاش رو با پودر نمک نم نمک سنگ خالص باشه بهداشتی باشه و زد اوفونی شده باشه باکتریای قارچی نباشه بعد جاشن دوباره روغن زیتون روغن زیتونه خوراکی مرقوب فرابری شده یا داره اوسانس نباشه این یکی از راه های درمان سیاتیک یا ارق و نسار که تروایات شیه اومده دوم خوردن روغن بنفشه خالص که بنفشه طبیه کوهی البنفسجم که در تایی روغن زیتون خوراکی بجشونی و تهیه کنی هم قوی ترین داروه زد روماتیسم نفسلی و همچنین بحث ما که بحث سیاتیک که مطلب سوم میتونه هم بخوره هم ماساج بده محل درد رو مال خوردنش که تو روایات هست از رسول الله، فرموشتر رسول الله به امیر المؤمنین علی علی السلام. لو علی من ناسو مافی دهن الب نفسج لحساو اگر فوایدش رو مردم دنیا میدونستن دونستن هراین جور جوره می نوشیدن. حالا یکی رو شما بیان کردم مطلب سوم برگ موزه برگه برگه مرزه برگه مرزه این رو با اصل مخلوط کنید پودرشو با اصل مخلوط کنید و بر موضع درد سیاتیک زماد نمایید ماساژ بدین مثل پماد مطلب چهارم مبایسته ما که سیادونه خوندم که خیلی فواعد داره سیاه دانه با اصل بخورید مخصوصا شب قبل از خواب و پودر سیاه دونه مخلوط با اصل اگر بر موضع درد سیاتیکی و همچنین دردهای مفصلی آرتریدروماتوید التهاب مفصل گذاشته بشون دردهای التهابی مفصل و درد سیاتیکی ساکت میشه مخلوط پودر سیاه دونه با اثر که بر موضع درد گذاشته بشه از این داروهای گیاهی اکبر دو و یا داروهای شیمیایی پماد پیروسگام یا دیکلوفناک یا پماد انگلیسی کریم فاردیان یا پماد آمریکایی جینگای قوی مخلوط پودر سیاه دونه با اثر که روی موضع التحاب مفسد یا درد سیاتیکی که بگذارین از این چسبای کمر شیمیایی هم قوی تر میتونه شخص شب تا صبح بگذاره رو موضع درد کمرش یا مفصل زانو و مانند او هر مفصد این هم یه مطلب تو بحثای تقویت نور چشم تو بحثای کمردردهای ناشی از سعد مزاجی بیاناتی شده در زمینه استفاده از سیاه کتاب‌های کتابهای تحقیقی نوشته شده از جمله سیاهدانه مؤلف معلف حاتمی که بازم تیتر کتابش در جلد فهمویش رسول الله رو نوشته که در سیاه دانه شفای کلیه بیماریا هست مگر مرک یعنی مگر عجل حتمی نه عجل معلق اینجا به صورت مطلق ترجمه کرده چاپخونه ترجمهش نتمامه ناپسم حالا حبت و سودا الکمون الاسود عربا ها میگن الکمون الاسود اروپای غربی این رو حاشیه زن اروپای غربی میگن به سیاه دونه دانه شفا بخش الکمون الهندی تو بعضی نسخه های چاپ قدیم الکمون هندی هم هست اینجا حاشیه زن بعد چاپخونه اینجا اشتباه چاپ کرده نمشتیم شنیز یا شنیز این اشتباه این مربوط میشه به اقسامی از تخت سلا در نجاری و صنعت خلاطی و همچنین مهندسی صنعت چوب نه اینجا از شنیز تروایات شیه است نه دو قسمه رنگ سیاه غیر رنگ به صورت شفاف متالیک گایی هم پررنگه ولی خاکستری پررنگه اونه میگیم شونیست پس سیاه دونه چون دو قسمه هر دو نوعش طور و آیاتشی ای اومده هم حبت و صودا هم اششونیست پس اینجا هم چابخونه یه اشتباهی بیان فهمده اما حبت و البرکه آفرین آفرین این خوبه که نمشته <تص> مثلا فرض کنید در صفحه بیستویکش ش میخوام فوائد به کارگیری سیاه دونه رو مثلا در صفحه بیست این کتاب برای از بین بردن چربی خون که یک از بیماره متابولیکه برای از بین بردن چربی خون یک قاشق کوبیده سیاه برای از بین بردن چربی خون یک قاشق کوبیده سیاه و یک قاشق از گیاه اخی اخی لیا, اخی لیا که به آن هزار برگ هم می گویم با یک فنجان اصل مخلوط کرده و در ناشتا میل کنم در برطرف کردن چربی خون بسیار عجیب است به طوری که جانشین جراحی قلب که خطر مرگ را دارد می شود حالا به فرمایشات این بزرگوار حاشیه زرم. مطلب اول از کتاب معارف گیاهی جلد سه صفحه سیزده دکتر شیعه بزرگوار دکتر حسین میرحیدر هزار برگ و معارف گیاهی جلد پنج صفحه ده هزار برگ آبی هم تبره هم رفع تشنگی میکنه هم ضد زکامه مخصوصا ضد زکام در اطفال و کودکان. همچنین ضد، اصحال خونی مزمنه حالا اینجا نیست لفظ یونانیش رو آقای بزرگوار شعه گرانقد قلام حاتمی لفظ یونانیش رو در کتاب آورده گیاه اخیلیا همچنان که عالم بزرگوار آیت الله محمد مؤمن حسینی تو کتاب تحفه حکیم مؤمن به زبان فارسی عربی ترکی و هندی و یونانی داروهایی که تجویز میکنه به هر پنج زبان حالا اینجا این گیاه اخیلیا بهش درخت ابریشم همچنین درخت شب خسب اگر لحجه سبزواری فرومدی داورزن مزینان که اطراف شهرود و شهر سبزوار در استان خراسان رزویه اونجا میگن خسب مثلا میخوام بگن خابیدی میگن خسبیدی یعنی خابیدی شب خابیدی. حالا اینجا میشه شب خسب به لحجه اونا آواشناسی فوناتیک کلام اما همجوری که خودمون بخونیم میگیم شب عرب عربای جدید میفرماین شجرط الحریر با شجره شجرط الحریر خواستن هر کسی به هر لحجهی هست خوب این درخت تصور کنه برگی که میگیم اشتباه نکنه پس فواید مختلف داشت یا اتونه این داروی ترکیبی گیاهی یکی چی داشت؟ سیاه دونه. پس مخلوط سیاه پودرش با گیاه درخت عبریشم که بهش هزار برگ میگیم همراه یک فنجان اصل مخلوط کنه و مصرف کنه مخصوصا صبح ناشتا داروی بسیار قوی زده زیادی چربی خونه یعنی چربی خونه زیادی رو بسیار کاهش میده اگر کسی فشار خون داره چند قطره روغن سیاه دانه با هر آب آشامیدنی گرمش بخوره گرچه هفته یک مرتبه باشه به زودی فشار میاد پایین نیازی به قرصای ست فشارخون خون که زد رنگه یا کپسولاش نداره اگر کسی مثلا ورم کلیه داره مقداری از کوبیده سیاه دونه با روغن زیتون خمیر کنه و روی کلیه‌ای که ناراحته به خاطر نفریت به خاطر ورنش هر روز صبح این کار انجام بده التهاب ورم کلیه برطرف میشه یا اتون هست فرمایشات امام صادق علیه السلام مصرف سیاهدانه زده اورامه زده ورم هاست زده نفریت های تو بحث نفرولوجین حالا یکی از اون ورم ها هم ورم کلیست یکی دیگه ورم تحال یکی دیگه ورم کبد یکی دیگه مخصوصاً ورم های زانوب پایین ورم های زانو به پایین که پاش انقدر چاق میشه که تو دمپایی و کپش خودش نمیره بهترین داروش حتی در دیابتی ها که زانو به پایینشون ورم میکنه مؤمنها. معمولا برای اونها هم خوبه بعد از یه مدت چند روزی که میخورن این ورم ها میخوابه کسانی که روماتیسم دارن روغن سیاهدانه رو که گرمش کنن بر محل روماتیسم بگذارن و با شدت ماساج بدن مثل نمد مالی ماساج میدن محکم نه ماساژ محکم با روغن سیاه دونه بدن بعد میتونن جوشانده سیاه دونه رو با کمی اصل بخورن مخصوصا این ای که از سیاه دونه است با کمی از اصل بعد از خواب که از خواب بیدار شد بخورن اینم روماتیسمش بسیار بهبود بهبودی حاصل میشه کسانی که قند خون دارن کسانی که قند خون دارن یک پیمانه کوچک از سیاهدانه رو که خوب بسایند و یک قاشق بزرگ از تخمه هندوانه هنزل و همچنین نصف پیمانه تخم شاهی و همچنین دانه انار آسیاب کنم و همچنین پودر چغندر مخصوصا چغندر قند یک پیمانه و همچنین یه قاشق کوچک از انقوزه با شیره انجدان شیرابه انجدان بیشتر تو سوریه انجدان زیاد انجدان رومی میگن بلی اینا همه را قاطی هم دیگه کنن بعضی هم حالت گله میگن که منطقه کرمانجی و یا اکراد اینا همه را قاطی هم میکنن مومن ها. این مخلوط رو هر صبح ناشتا که میل کنن با شیر تازه که بهتره تاثیر کاهش قند خونش بیشتره این شیر تازه که میگیم به منزله کاتالیزور مجاورتیه نظیرش یادتونه گفتیم مثل حلیله سیاه که افزایش نور چشم و یا افزایش مسل و ملین بودنش گفتیم که این حلیله سیاه رو تو روغن زیتون بزن بعد قورت بده یا پودرش رو با روغن زیتون مخلوط کن بعد بخور اثر بخشی سریع تره به اسطلاح شیمی میگیم کاتالیزور مجاورتی که نقش مستقیم در معادله نداره ولی سرعت به معادله میبخشه نظیر این که مثلا یه کسی میخواد بازیگوشی کنه یه حبه قند و آتیش بزنه خب این قطی کبریت صد تا چوب کبریت داره همه هم روشن میکنی میزنی یه قنده نمیسوزه سیاه میشه زغال کک اما نمی سوزه اما حالا سیگار کشیدن بده حالا اگر خاکستر سیگار یک جایی بود حالا این حبه قنده تو خاکستر بقلتونی بعد یک کبری روشن کن بهش بزن کبریت هم خاموش کن تو آخر می سوزه یعنی مؤمنان این خاکستر سیگار شد کاتالیزان و مجاورتی تو بحث سوختن چی اون قند بنده شیمیایی سرعت به معادله بخش دیگه در کمترین زمان با کمترین انرژی تو بحث زندگی هم همینه اگر کسی به آتش قرب و شرق بسوزه خسرت دنیا والآخره چه قرب و شرق درون باشه که نفس اماره و حدیث نفس القاعت شیطانی و خودمهوری و خودبینی و خودپرستی چه قرب و شرق بیرون باشه با هر جغرافیای طبیعی و سیاسی آدم اگر با آتش قرب و شرق بسوزه دنیا آخرتش خرابه هم خودشو ضایع کرده هم دیگران رو به ضایع شدن می کشانه. اما اگر انسان و افراد بشر به آتش عشق حلال ولایت حق که ولایت الله جل جلاله و ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله علی و ولایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ولایت امام حسن مشتبه امام حسین و نه فرزند معصوم از نسل امام حسین اگر هر شخص یا اشخاص یا مردم دنیا عشق حلال به ولایت حقه داشته باشند و پیرامون ولایت حقه دل بسوزانند و گوش به فرمان باشند و به اطاعت و تبعیتشون رو بالا ببرند و مصلحت شخصیشون رو نبینند مسلحت ولایت حقه رو ببینم در دنیا و آخرت عزیزان و با عافیت و در امنیت کامل چه امنیت فکری چه امنیت اجتماعی چه امنیت تحصیلی چه امنیت در کار که بحثای تخصصی جامعه شناسی و روان شناسی بالینی و علوم رفتاری تصلا فهمیدین مؤمنان بشر محتاج ولایت حق است نباید تو خواب خرگوشی ادامه بدن که اقابهای تیز پرواز از غرب و شرق اونها رو دونه دونه گیر بیارن و تیکه تیکه کنن هم خودشون رو بین برن هم ناموسشون هم اموالشون هم آبروشون اگر بشر فعلی با ولایت حق باشه ازدتش پایداره، امنیتش پایدارن. آنچه که از دنیا داره به سلامتی و باقی میمونه اگر کسی مثلا خاله گوشتی داره یا زگیل داره میتونیم از سیاه دونه تازه که در سرکه سیب به عمل آمده و خمیر با سرکه سیب درست کردیم با پاچه پشمی یا کتانی روی محل میخچه یا دمل میگذاریم کم کم میخچه و یا دمل از بین میره کسانی که لکه های سفید پوستی دارن یعنی بیماری بهق که بشره و لایه مالپیگی رو میگیره خب یه بار فرمایش گهرباره امام رضا علیه السلام میگه از مع لحم البقر برگ چقندر با گوشت تازه گاو خورش درست کن هفته چند بار بخور بیماری بهق خوب میشه بس. یه بار دیگه بحث مؤمنه سیاه‌دونه است که خدمتون گفتیم سرکه کهنه به اضافه حنا به اضافه سیاه‌دونه ساییده شده اینها رو مؤمنه مخلوط کنی و روی لکهای سفید بگذاریم. بعضی افراد تو بحثای جانور درمانی از پوست خوش شده پرست هم استفاده می و مخلوط در این می کنن. حرف ما حرف بعضی هاست. کسانی که زیبایی صورت و درخشش چهره میخوان طب روایات شیعه میگه حوله یا دستمال تیکه پارچه خرقه به صورت نماز به صورت عروس نمال دوم نماز شب بخون خیلی فواعد دارم داره یکیشم بحث چهره زیباز سوم آب وزورو رو خاشک نکم چهارم مثلا تو بحث زیبایی ظاهری در چهره و درخششش سیاه دونه تازه رو پودرشو که در روغن زیتون مخلوط کنی که به صورت خمیر در بیاد و به چهره بمالی و در مقابل آفتاب یه مختصری بیستی در هر وقت از روز باشه فرقی نمیکنه. تو بحث خوردنی ها رمان الحالو انار شیرین که تو روایات شیه اومده خیلی فواهد داره یکی چی مومنا پوست چهرت شفافه برراقه درخشان میشه بیدم که قبلا تذکر دادن کسانی که شکستگی استخان دارن جا انداختن جوش خورده مومنا یا میخواد جوش بخوره پیش پیش بنده با تجربه رفتن یا پیش دکتر متخصص ارتوپد یا مفاصل رفتن حالا جه انداخته ریگلاژ شده مرتب یک قاشق بزرگ سیاه دانه رو به آشیکه به آشیکه حاوی عدس و پیاز و تخم مرغ اضافه میکنی و یک روز در میان از این آش استفاده می کنیم و اطراف محل شکستگی رو در روز با روغن سیاه خالص چرب میکنیم. کنیم یعنی سیاه دونهی که تو روغن زیتون جوشیده آبشه صاف کردی، سرد شده با اونم ماساژ می ده. بعد می بندیم و پس از هر نوبت محل شکسته رو باز می کنیم. روغن سیاه رو گرم کرده محل رو مرتب چرب میکنیم. در درمان شکستگی استخون بسیار مفیده یک چیز دیگه هم بود که قبلنا گفتم اگر به درستی جابندازی ریگلاژ بشه همراستا بشه به درستی جابی افته ریگلاش بشه همراستا بشه استخونه گفتیم از عرق الجبال مومیا ایرانی ها میگن مومیایی. به مقدار دو ماش یک ماش امروز اندازه یک ماش امروز از مومیا بخوره فردا هم اندازه یک ماش بخوره قورت بده و محل شکستگی رو با محلول قلیز مومیا ماساژ بده آروم نه تنها محل شکستگی جوش میخوره ترک استخوانم جوش میخوره به گونه ای که در سرمایه شدید زمستان و در گرمای سوزاننده تابستان محل شکستگی درد نمیگیره اما در پزشکی جدید ریگلاژ میکنن همراستا میکنن جوش میخوره اما ترک رو درمان نمیکنه. لذا بیماری که استخونش شکسته تو سرمای سوزان زمستون یا گرمای سوزان تابستون محل شکستگیش درد میکنه. یادتون باشه عرق خالص چربال مومیا یا مومیایی بسیار مفیده. و قدرت کارایش خیلی زیاده مؤمنان سیاه دانه از اناسر بسیار مفیدیه و بوی خوشی دارد و اناسر بسیار مفیدی رو هم دارا می باشد تو بحث داروگیاهی از اناسر بسیار مفیده که ذکر خیرش تو روایات اهل بیت اسمت و طهارت اومده فسفات آهن فسفر کربوهیدرات ها چربی های مفید گیاهی حتی حدود 28 درصدش رو چربیای های مفید گیاهی تشکیل میده اثرات حیات بخش ها ضد عوامل بیماریزاس مخصوصا ضد ویروسه خود سیاه دونه ضد ویروسه خاصیت ضد میکروبی ضد عفونی داره و نوعی کاروتین داره که این کاروتین خاص ضد سرطانهای خاصه نوعی کاروتین داره که برای درمانه نوعی از سرطانها کار میره هرمون های جنسی فراوانی در سیاه دونه هست لذا یکی از داروهای مهم لقی کمر این که شخص تونتون برکتش میاد تو خواب یا بیداری یا تو مسائل سلام علیک خصوصیش با همسر گرامیش کم میاره بسیار داروی مناسبیه که یه قاشب مرب بخوری سیاه دونه با اصل بخوره شبها قبل از خواب با اصل به جوه بخوره در افراد سعد مزاج که همیشه بدنشون یخه کف دست و پاشون یخه و افته متابولیسم بازالشون شدیده بسیار مفیده لذا یک داروی نشاط آور و فرح آوره اگر کسی ادرارش مشکل داره از حیث حبس بول یا کمی ادرار داره سیاه دانه چیه؟ مدر دیورتیک مدر ادرار آور تو بحثای تخصصی اورولوژی یعنی شناسی و مجاری ادراری اگر کسی مشکل صفرا داره المرار المره ازدیاد مایه سفراوی داره که تو روایاتش یه تذکر فرموده و بخواد پمپاژ سفراش به اسناعشر دوازده راحت باشه با سیاه دونه تو جیره قضایش باشه قربون این قدیمی های عاقل که به همراه نانشون یا به همراه قطقی ماسجوش کرجوش از این چیز درست میکرم مجز قاسمی خلاصه تو دوغ و ماستشون یا بعد غذاهاشون یا به همراه غذاشون سیادونه می‌خوردن انقدر دوچار بیماری بیماری‌های غیر عضوی معده و دستگاه گوارش نمی‌شدن چون ضد نفخ شکم ضد گاز معده ضد ازدیاد گاز معده و ضد قرقره‌های شیکمی و روده‌ای و فرمایش امام صادق علی السلامه در درمان قرار قرار که تروایات شیه بیان شده پس این بخش از ناراحتی های غیر عضوی دستگاه گوارش رو هم خوب میکنه از باب پیشگیری هم میتونین بخورین تصاحب شد مومن خب حتی در سیاه دانه انزیم هایی هست که کمک میکنه به هضم غذا در سیاه دانه آنزیم هایی هست که کمک می کنه به هضم غذا. نظیر خورما نظیر سیب رسیده شیرین درختین نظیر انار شیرین نظیر خربوزه این چهار تا نظیر که آورده همه همه تروایاتشی هست که بعد از غذا هر کدوم بود می تونی بخوری کمک می کنه به هضم غذا. حالا یکیش هم حبت سودا نیست این هم کمک میکنه به هضم غذا به خاطر وجود این آنزیم های خاص کسانی که ترشا دارن یا پوده میکنن یا تخمه میکنن یا سردل میکنن و یا سرسوزه معده دارن به اصطلاح اصولت به داخلی هاریسون هارتبورن در منطقه اپیگاستر دارن سرسوذه معده ابتدای ورودی به معده دارن. اینجا ضد ترشا و ضد ریفلاکسه. یعنی ضد برگشت اسید معده به مریه. همین سیاهدونه. قربون امام صادق علیه السلام بره. یک کلمه حرف اساط میگه سیاهدونه بخور. بگو چاش. حالا با هر دین و مذهبی که ascii خیرش میبینی. هادی واقعی امتها از جمله امت اسلامی امام, امام معصوم محتاج کسی نیست. ملل جهان و امت اسلامی محتاج امام معصوم. رعیت مردم محتاج امام مبین هم. امام مبین فقط محتاج خداست. ولا غیر. تمام بشر با هر دین و مذهبی که هستن محتاج خزان علمن محتاج عالم آل محمد پس این سیاه دانه که مصرف میشه مؤمنا ضد اسیدهای اضافی معده حتی حتی مؤمنا انظر آن تخصصی ها نمیگذاره که گیرنده H2 ای گیرنده H2 ای در جداره معده، جداره داخلی معده الارم آلارم بده و تحریک اضافی داشته باشه در ترشح اسید معده که بعد محتاج بشی به شربت‌های مانیزم آلومینیومی ام جی و یا های خاصی قبل از غذا یا بعد از غذا دیگه محتاج نمیشی به این مواد شیمیایی وقتی که تو جیره غذایی سیاه دونه باشه و اون چندتایی که امام صادق فرمود بود که خدمتون گفتم از خورما و از خربوزه بعد قضا و سیب و انار شیرین اصلا سیاه دونه حالت تسکین دهندگی طبیعی دارد یعنی یک مسکن طبیعی لازم نیست که استفاده کنی از مسکن‌های شیمیایی که غالبا مشتقات تریاد مروفینه و آنفتامین هاست چرا خودتو معتاد می‌کنی به دارو عادت داروی هم زشته مثل اینکه معتاد بودن به مواد افیونی و قرصهای روان برگردان زشتره باعث انهدام فرد و جامعه میشه هم از حیث اقتصاد، هم از حیث خانوار، هم از حیث روابط عمومی سالم. حتی مؤمن تو بحث آناتومی حرکت یا حرکت زایی صحیح سیاهدانه یک نقشه ویژه داره تو بحث پیشتیرین یا درمان از لقوه چه لغوه سالمندان چه لغوه جوانان و نوجوانان یعنی بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت سیاهدانه به عنوان پیشگیری و به عنوان درمان نقش ویژه داره سیاهدانه دارای شگفتی های فراوان و اسرار عجیب و منافع زیادیه که اگر پژوهشگران گران در داخل و خارج کشور و همه محققان بخوان اونا رو بیان کنن و خیلی از دارخونا تعطیل، خیلی از دکتران بیکار تو متربشون باید مگست بپرونن چون مریضی مراجعه نمی کن. هنوز تازه داخل و خارج کشور به همه منافعش پی نبردم. مثلا یکی از منافع سیاه دانه اینه که ضد تحوه ضد زد زدن و ضد زد استفراقه سیاهدانه رو اگر با قرنفل سیاهدانه با قرنفل قرنفل هم که روایات خودمون بیان کرد حبت و سودا هم همجور سیاهدانه رو اگر با قرنفل خوب بجوشونی و بدون شیرینی خوردن همجوری بدون اینکه که شیرینش کنی بخوری تا دو روز روزی دو مرتبه به حدی تأثیر دارو زیاد هست که نیاز به تکرار دارو در روز سوم نیست صفا کرده پس خانومایی که ویارشون شدیده در ماه دوم سوم حاملگی یکبار یک بار میتونن از سبزی سوسنفر که چای نعنا فلفلیه قبل از غذا استفاده کنن و بعد از غذا یه استکان آب به تازه یه کمره برن نصف استکان عرق نعنا بخورن ضد تهوع ضد استفراغ و زده اغزدنه حالا از اون قوی تر اون که سیاه هست این سیاه رو مخلوط با قرنفل قرنفل دارویی ها این دوتا رو با هم خوب می به نسبت مساوی از این جشونده میخوری بدون اینکه شیرینش کنی. به مدت دو روز هر روزم دو مرتبه. یعنی هر دوازده ساعت یک مرتبه. دیگه نوبت به روز سوم نمیرسه. در روز اول حد اکثر در روز دو دوم دلشوره دل به هم خوردگی و آشوب و همچنین پرشاش خوب میشه. و استفراغش برن میاد قدرت خدا کسانی که فقط ترشا داره اما پیچش شکمی مقصن مقصن نداره تو رو واید میگه مقصن قبلانا درستش گفتم پارسا پیچش شکمی نداره بیماری مقصن ممغین ساد مقصن نداره اما ترشاد داره در مقصن قبلن گفتیم اگر کسی دلدرد های شدید توان با پیچش های شدید معده یا روده داره که طرف رو خم میکنه از شدت درد قبلا از و آیات خدمت شما گفتیم که امام صادق علیه السلام و بعضی دیگه از معصومین و السلام فرمودن که گردو با پوستش بذار تو آتیش مغز پخ که شد مقزش بخور مقصا خوب میشه پیچش های شدید شکمی خوب میشه پزشکی جدید داروی واقعی اینجا نداره داروی زده اسید و داروی زده ریفلکس میده گرفتیمون اما داروی واقعی نداره اما تب بالمعصومین که تب اسلام بلاییه که تب وحیانیه اینجا داروی خاص داره برای بیماری خاص که اوستون گفتم لذا سنت که یکی از ادله ربعه شیعه هست کتاب محکمات قرآن و روایات سنت یعنی کلمات و افعال و تقریرات چارده معصوم این سنت حجته چرا؟ زیرا یگانه الگوی واقعی است که هرچه علم بشر پیشرفت کند به حقانیت آن بیشتر پی میبرد. ما کار به سنت جاهلیت الاول و عصبیت الجاهلیه و کاری به سنت مدرنیته نداریم که فرضی بافی و نظری پردازیشون بیشتر از علم و یقینشونه سنت که یکی از ادله اربعه شیعه است که حجتن همینی که خدمتون گفتم یعنی یگانه الگوی واقعی که هرچه علم بشر پیشرفت کند به حقانیت آن بیشتر پی می‌برد رضا می‌گیم مسلمونا و هر عاقل دیگر احیاگر سنت رسول الله باشم برای دنیاتون هم خوبه برای آخرتون هم خوبه حالا یکی از مسائل خوراکی در درمان بیماری خاصی بود مؤمنان همین بحث درمان مقصن یا پیچش‌های شدید کمی با خوردن مغز گردوی پخته شده که تو پوست خودش به فضا گردو رو درست می‌ذاریم تو آتیش مؤمنان یا بالا بخاری یا روی شعال پخش کنه گاز مغز پخته شد حالا میشکنین کنین مغزشه می‌خورین دو تا که بخورین فلا فاصله پیچش شکمت خوب میشه قربونه امام صادق من حرف اساد حالا تو بحثای سیاه دونه مؤمنا برای معالجه ترشا چند قطره روغن سیاه دانه رو که با شیر گرم مخلوط کنی همراه با عسل یا آب یا شاخ نبات شیرین کنی بخوری اینجا ترشا برطرف میشه به گونه ای که اصلاً ترشایی نداشتین معلوم شد مؤمنا اگر کسی مؤمنا ها درد های کلون داره به اصطلاح فیزیولوژی گایتون یا طب داخلی نلسون یا اصول طب داخلی هاریسون یا روش تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن اگر کسی درد کلون داره یعنی درد روده بزرگ اینجا مومن ها تو بحث خودمون خب؟ ما تو پزشکی اسلامی دارو داریم یک قاشق سیاه دانه رو با ریشه شیرین بیان و با آب گلابی که مفرح قلب هست با آب گلابی که ذره های چوبیش همراش باشه یعنی فیبر گیاهیش همراش باشه به پزشکی یواش یواش مومن ها اینه بخوره یه معتبه یه نفسه یه لیوان نخوره یواش یواش بخوره با قول امام صادق علیه السلام مصن مصن یواش یواش مایات بخور مخصصا آب آب جوش بله درد کلون با تعجب خود مریض خوب میشه خوش هم تعجب میکنه. یه ما سالا درد میکشیم زرد میکشیم هرچی رفتم حاجقا لپارسکوپیم اندوسکوپیو بیوسپیو این فوق تقصیص گوارشو این فوق تقصیص پایین تنه آشولاش شدم اما خوب نشدم یا در دامن ولایت که با کمترین هزینه و کمترین زمان خوب میشی و آقای خویتی با آقای معصوم باش تا آقاییت حفظ بشه پس برای معالجه درد کلون یا روده بزرگ یک قاشق سیاه رو با ریشه شیرین بیان و با آب گلابی که زرهای چوبیش باقی باشه یعنی فیبرگی هایش باشه میل کنی به آرامی کم کم بخوری درد کلون به شگفتی های به صورت انگیز بلی خود مریض هم علامه سوال تعجب عمل میکنه رو برطرف میکنه و عصب ملتهبه روده کلان، روده بزرگ آرام میشه بیمار آرامش خودش رو باز میابه چیزهای دیگه هم مؤمن در این جا هست خدا رفته گانتان همه شما رو با آفیت و امنیت بداره مسلمانان رو و انسان های مظلوم رو در همه جای جان با آفیت و امنیت بداره